درس چهارم خواندن تهران تهران پایتخت ایران را میتوان یک کلان شهر نامید چرا که یکی از بزرگترین شهرهای دنیا است و به صورت غیرقابل کنترل رشد کرده است جمعیت تهران تقریبا یک ششم جمعیت کل ایران است از سراسر ایران مردم به امید زندگی بهتر به تهران کوچ می کنند به همین دلیل کمتر کسی را می توان یافت که اصلا تهرانی باشد. همین ویژگی باعث شده که زبانها و گویشها و لحجه های مختلفی در تهران وجود داشته باشند که رفته رفته در نسلهای بعدی فراموش خواهند شد و جای خود را به لحجه تهرانی که فارسی استاندار در نظر گرفته می شود خواهند داد در گذشته تهران یک روستای کوچک و ناشناخته بوده که به مرور زمان اهمیت بیشتری پیدا کرد و در دوره سفوی نام و نشان شهری یافت و در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط آقا محمد خان قاجار به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد فارسیه آمیانه کتابی مونیرو پور شبه بلند منیرو روانیپور زاده 1954، داستان کوتاه و رمان نویس در روستای کوچک جفره به دنیا آمد و در شیراز بزرگ شد. مدرک لیسانس خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه شیراز گرفت. اولین کتاب روانیپور به نام کنیزو مجموعی از نه داستان کوتاه است. به در زمستان سال 1989 اولین رمان خود به نام اهل قرق را منتشر کرد. روانی پور در بسیاری از آثار خود آشکارا از عقاید و رسوم سنتی مردمان روستای زادگاهش انتقاد می کند. جفر زیر فریادهای گل پرجان می داد. باد پایزی سینکشان از دریا می آمد. لابلای نخلها میپیچید و خاک و خاشاک به کاغذهای مچاله شده را با خود می برد. شب از نیمه گذشته بود. مریم در جای خود غلط می‌زد. مادر در ببند. همه ی بسته است. بگیر بخواب میزندش مادر اما ابراهیم میزندش نه مریمی داره نازش میکنه حالا بگیر بخواب فردا صبح میاد بازی میاد دریا آره خودم میرم دنبالش اگه بخوای میرم دنبالش دل دلخراشی سیاهی را برید و به سر مریم کوبیده شد مریم هراسان نشست میمیره مادر به خدا میمیره صدای خنده ریز مادر را شنید و صدای آرام پدر که در گوشی با مادر حرف میزد. بچه ترسیده تمام درا رو بستم بازم صداش نمیذاره. حالا یه کفتر افتاده تو چنگش مگه ول میکنه. درهای اتاق پنج دری بسته بود. فانوسی نیمهکش بالای حبانه پتپت میکرد. کرد مریم دور از پدر و مادر کنار دیوار خوابیده بود. صداها درهم و مادر دست مریم را گرفت او را به زور خواباند چادر شب را رو روی او انداخت پدر تکیه به آرنج دراز کشیده بود و سیگار کشید. ایران را بهتر بشناسیم بزرگراه یکی از بزرگراههای تهران بزرگراههای بسیاری در تهران وجود دارد ولی با این حال در ساعاتی از شبانه روز ترافیک سنگینی در تمام سطح شهر هست که باعث آلودگی شدید هوا میشود، در تهران برای رفع آلودگی مقررات عبور و مرور خودرو برقرار است و خودروهایی که شماره پلاکشان با عدد فرد تمام می شود مجازند که در روزهای فرد تردد کنند و خودروهایی که شماره پلاکشان با عدد زوج تمام می شود می توانند در روزهای زوج تردد کنند البته برخی از تهرانی ها با خرید دو دستگاه خودرو از خودروشان هم روزهای فرد و هم روزهای زوج استفاده می کنند